بسم الله الرحمن الرحوم الحمد لله رب العالمين صل الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین الماسومین و اللہ تتاهمتا لعجائرین الماسومین و جميع المشتهرین و الحمد رحمتی و رحمت رحمتی باستی کبود بمونسابت اطاهم رسول الله بمیداره آشنایی اجمالا دیارتونیم احساسی یک دیار ناسمه به تمرمون طور نیز به مقدار اجمالی بخش مرازمه رو در کلمات اصولیین از خواب ما قدس الله و اصلاحان که موجود بوده تحرزی بشه و اتبا من نقدشن انشاءالله واضح خواهد از خرید برای نمونه چون دیگه بخواهی متعدد اقوال و کما زیادتا باشیم خیلی طول میکشه برای نمونه این کلمات مرحوم صاحب کسود رو متعرض شدیم از دیروز من یادم بردن صاحب کسود در بحث حکم حقی و شرعی چه حکم بر دو بسمه یا حکم اهلی و شرعی در مسئله احکام حقی که چون صاحب من هم از خدم که مرحوم استعابادی مرادش رو از حقی توضیحی داده ایشون در احکام متعرض همون شخصی شده بعد متعرض مسئله قاضی ملازمه شده. بعد، بعد بله. اون متعرض حسن شده خود مسئله حسن متعرض شده بعد به عنوان ممادل علیه الحق ولغناه اصله البراءت آورده که از این در فرماش کتبی صادر هم از سالات البراقه همین همینه ها بود بعد هم به اسطلاح اسطلاح هم طولانی هم به اسطلاح براقه بخش کرد خیلی کتاب یه تقریباً بسید تحقیقا مطروب شده اما این کتاب اگر کسی بخواد ریشه‌های های کلمات رسائل و کفایی رو ببینه خیلی معسکره چون این کتاب رسمی و خبزه بود در اون وقت خیلی برای احطایه بر رسائل و کفاییه مراجعه این کتاب مفید بعد متعرضه که از عدله عقلیه اصل عدم شده عدم دلیل بعد از عدله عقلیه استطحاب شده این افکام عقلیه که ایشان متعرض شده لاعقه که احتسال از راستان بگیم شون دیده صحبت شده و جای خوندن این بحثانی این است که ایشان متعرض شده هر که در بحث اول متعرض مسئله احکام عقلی شدن و هم که احکام شرعی رو پرموندن به پنج رس میشه واجب و مصدحب بود اینها از احکام تکلیفی احکام عقلی رو هم پنج رس می کردن یا واجب رو حکم مصحب یا مصدحب یا محلی دیگه من نمیخواد بخورم که این بحث اولی شد. در بحث دوم ایشان متعرضی این نکته شدانی که اگر ما گفتیم این مستحب به هر ریز میشه این مستحب به شرعی است. این نکته ملازمه اینه اگر گفتیم این عقلن مخشوه با قطع نظر عدل شرعیه آیا میتونیم دهن این مرادی این شرعنم مخشوه؟ یعنی کراحت عقلی رو اگر اثبات کردیم کراحت شرعی به ملازمه صابت باشیم این مراد الفاضی ملازمه است این که برمویش اختلاف و پایلونه در حسن خب در ملازمه مراضی ایشان این این راجع به این مدرم بعد در بحث ملازمه ورد توضیحاتی شده و تقصیم مقام که اونا رو من نمی کنم متعرض بشم مثلا طولانیه خیلی طولانیه به جایی وحثم نیست بعد خود ایشان خود مرحوم صاحب و قائل به نهی ملازمه میشه اینکه ملازمه ای نیست بین احکام عقلی و احکام شرعی ممکنه که بله مثلا به حکم عقل مستحب باشه اما به حکم شرع به اصطلاح ابطه اثبات و حکم شرعی نکند بعد از تخفیه شافی که من دارم 340 حجت قبول دل ملازمه متحدث دو سال قبول شده هم کسانی که قائل به ملازمه هستند هم کسانی که قائل نیستند من اصلا شو نمیخوام طولانی بشه دست همجور فهرستوان نویشه دلیل اتصالی که قاله به یعنی اگر جوی عقل گفت واجبه پس استکشاف توی شرعنم واجبه اقاب در روز آمد اگر عقل گفت حسنه بگیم شرعنم مستحبه ولو اصلا این بخش در شریعت نبود مثلا پر از کنیم با مثال آیا خیابان ها مثلا کچه ها رو اصفاد بکنیم فهرستوانی یا مثلا کچه ها رو سنکرش بکنیم بگیم عقلمون بهتر، حالا که عقل یه احساسی احساسی هست، پس این شرع هم میگه احساس چه بگیم عقل یه بهتر رو کجا بشه؟ بهتر اساس انقرش بشه. حالا که عقل گفت احساس پس تضیه بگیم شارع هم گفته احساس به یلتحب و اینکه یامن‌ها احساس بکنید. طبعا این بکرد بکنه ایشون آرده ملازمه رو حواسش کاملا جمعه و درستن هست. ایشون بردن تو فقه استنباطی و نه تو فقه حکومتی. بعد این مثالی هم که من برسوم زدم برای همین فقه استنباطی. مثلا تغییر فتبا بدون مستحبت برای احالی شهر کنشه هاشون اثبات رو کنن. حالا این استحباب از کنشه ها؟ چون هم میگه اثبات از پلان بهتره پس اگر عقلی رو اثبات هستنش کرد ما روشن ب... هم لزوم نیست در در لزوم نیست پس حکوای به استحقاق بدین بگیم اینکه از این مستحبات این حساب کوچاتن اثبات بکنه میشه این فضا رو داد سوال سریه خوب روشن شد مطلب ادراک حسین عقلی جای بحث نیست بنابر حسین عقلی ادراکی جای بحث نیست اون جای که از این ادراک عقلی اثبات حکم بکن شرعی بگیم پس این مستر ایشون فهمیدن کسانی که غالب ملازمه شدن به چند دلیل تمسک کردن یک ضرورت گفتن این ضروریه بعد ایشون جواب بدهوالا من نمیخوام وارد بحث بشم میخوام فهرستوار ادلهشون رو بگم که معلوم بشه این بحث چه جوری بوده البته با مثل این بحثی کردم در کتاب این در زمانه که در یک ماه دو ماه, دو ماه, دو ماه با و اوت با و بحثایی که می کردن یه حالا هم کنند محسوب شدن فقط به خاطر یک مقدار نحوه کاری که اصولین ما داشتن دوبوم اجماع ادعای اجماع داره خب اینم هم جواب داره اجماع علمای امامیه داره سوم لاره لاره دیان نلعه به فیرتی مجبولون علا استحباب ماهدرک و حسنه این فیرتی انسانه اول ذراس و بعد فیرتی اجماع و بعد هم فیرتی چی با هم مد دایی شوهرمیشون الان را بالقذی خبیه ها اندلاعقل. نمیشه. بله، ازش گفتم. گفت ولش اکمل غرض و قرار آزادی. الان را بالقذی خبیه ها اندلاعقل که نبیه به سلاح بله. آن الحسن. که خب نمیشه که ما ادراک او بهبود کنیم خداوند گفته انجام بده. خب بله اینم امکان چهار. کنجام از سلم این مقدارشم در حیال این بوده ال آیات و دال لعلا ان الله یعنم رو بلعض دال احسان آیاتی که در تحقیل تفکر و این جاعت هست هست من مختصر میخونم از سادست که در میان اصحاب ما این الان بحث این بحث بیشتر مطرحه نه اون وجود دیگه یکی آیات مفرحه یکی هم از سادست ال اخبار رو بارده بابا و از این همه روایات در باب عقل و جهل و دین با عقل است و عقل اساس دین است اون اخبار و عقل من مایسته ها به هلکنان و فلان الان آخری بعد اینم شیش وجه برای کسانی که مدعی روشن اشتای وجه ها شدن که توضیح نمیدن فکر میکنم همین که میخونیم خود شکا کافی است یاد نمیخواد دارشون توضیح عبارد توضیح مختلف این چی که شاید برای کسانی که قاعده ملازمت رو ثابت میدازه احتجر منکرون سی سر شدو للملازمه ایغن به وجوه اونام که به حساب رفتن ملازمه ثابت نیست اله اول قول او تالا ما کن نمعذبین حتی نبعث رسولا تا بعد رسول نشه آثار باردین شدو انسان ادراک بکنه حتی نبعث رسولا دو... تا آخری در آن که مراجعه میمایه بودن و به همین گفتن من هم تکنیم هم تا یک حدی اصلا تصور معنیم میفرمان آن خودشون از ثانی ان الواجب شرعی مایود و فعله و ثباب من حیث و انهو طاعتون اصلا واجب و مستهب اینیست که از حیث این که اطاعت شارعه و تا ما هنوز اطاعت شاره حساب نکردیم نمیتونی به این داره تا حکم شاره رو نبینی و چه دومی که برای این نفی ملازمه به اصطلاح مطرح شده. از سال بر این طرح تصحیما از سال ملازمه. از سال <تصفيق> بعد این ظاهرا سال سال ثانی نویشدار تقریبا ما ظاهرا سال, سال سه اشتباه کرد غلط چاپ کرد الاخبار ادل على ان لا الا بعد بعث رسول ليحلك من هلك من هم بینه. برد؟ و يحيى من حيئا بينه و اینکه مثلا روایات ما داره که در هر زمان باید امام معصوم باشه تا احکام الهی بیان بکنه خب بنا در هر زمان ما معصوم باشه که به با افتام حقیقی اکتفانه میشه این هم وجه سالس در کلمات ایشان البته بعدی هم یک چیزی هم داره یک قول به تفصیل هم داره که دیگه اونو من نمونه این خلاصه اقوالی بود که در بحث قاعده ملازمه از در اصول قدیم شیعه مفرح شده بود اصول عمده استدلالش رو هم انز کردیم اصول استدلالی که منکر هستن تو اون سانی شاید مالا حجت تفصیل باشه شاید اون سانی من با کن سالست محتمال مالا حجت تفصیل باشه اشتباه کرده باشه حال تمسک کرده کسانی که قاضی ملازمه که چون عقل مثلا حجت باطنیست و میتونه کشف بکنه خصم اشعار رو درک بکنه این رو ما به جردان می‌بینیم. خب شاره مقدسا نمیشه خلاف او صحبتی بکنه اونچه که حسن از بشه هم میکنه اون چی که قبیه حساسش نه میکنه به درجات نه از اون هم اونا میگن زواهر بعضی آیاز اون که منکر هستن این که باید حسن بحث رسول بشه ما که نامعذبین حتی نبحث رسول هم این خلاصه بود از قائله ملازمه و توضیحات اجمالی که دیرو داشته به این کلن یعنی ای وجودی بود وجودی که قبلا از کردیم با قادمون برای حجیت احکام عقلیه در شمعه ببینید ما در این که عقل ما در زندگی خود ما میتواند حسن و تشریف رو در قبیه و رو تشریف شده حتی به همون معنایی که معتدله گفتن یعنی مرد و زن به این معنای که اگر ما فرصت می پیش در جامعه ما در زندگی خربی ما در خانواده ما اون فرصت از دست دادیم خودمون رو منامه میکنیم این این معنیه حسن قب که روز درست کردم این انصافاً وجدانیست این در این بحثی نیست این در من کلام آیا این لازمش اینه که حتماً تبقیه این یک جعل شرعی هم شده باشی نه نیست محل کلام این تصور یعنی بحث اساسی این قسمته یعنی که عقلانی ما محل کلام نیست اصناب او به جهد حالا این آیا بحثی هم هست که یعنی این بحث رو تصور مکنیش دارن اقتصاص به شریعت مقدسه داره ظاهرا را اختصاصی به ما نداره یعنی آیون بحث رو به این صورت مطرح کردن اقتصاصی به ما نداره این در تمام قوام بشریت میاد پس مثلا کسی که در یک کشور زندگی می‌کنه داره قانون خاصی حالا کسی که مثلا ما ایا دنج قرار درآمدی پولی جمع بکنیم این پول رو بعد مثلا به حساب دولت بریزیم که این رو مثلا چه بکنه و این کار حسنه سوال اینه آیا به مجرد این کار حسنه میتونه اقدام بکنه بدون که قانونو تایید بکنه اینو اصولا در جوامع بشری خوب دقت بکنه جاهایی که اعتبار قانون هست این هم روشن شده به مجرد این سوی ما اینو حسن میتونیم این کار کار خوبیه این پول گرفتن در اینجا کار خوبیه قصران این که الان ما میبینیم پولیس باید برکورت میکنه میگیم باید قانون باشه باید تصویل بشه کیفیت در آمده پول مقداری که در نیاد کیفیت خرده اون جاهایی که میخواد مسئول این کار بشه اینا یک تیه برنامه قانونی خوبه بید. و واقعا هم انگویگه کار خوبه آن ما در زندگی بشری خودمون کار به شهرم نداشته نداشت در زندگی بشری خودمون در قوانین موضوعه بشری کار به شدیل افنگواشید به مجرد اینکه مخصوصا اگر ما این رو بدونده به کل مواطن یا شهروند هر شهرونده ادراک کرد این کار کار خوبیه به مجرد ادراک اینکه این کار کار خوبیه اولا انجام بده انجام بده به معنا، یک رنگ قانونی بیره من فکر میکنم اصلا این مطلب تاییدش نمیشه کرد یعنی مشکل کار در اینجا اینه که این اختصاص به شریعت ندارد چرا من از کردم اعتبارات قانونی طبیعتش این است یعنی به اصطلاح طبیعت اعتبارات قانونی تا در حد بیان نیاد، و حد, حد حدودش مشخص نشه اصلا ارزش قانونی نداره طبیعت اعتباس قانونی اینه. حالا من این رو به لغت واضح تایی سوزید ما راشدی این قاضی ملازمه از دو راه میتونیم بحث بکنیم. یکی از راه طبیعت اعتباس قانونی یکی از راه ملاکات. مرگو مستاد و اصحاب ما غالبا از این راه هم دوبون بحث کردن. و اون که ما احراز ملاقات نمیشونیم بکنیم. توضیح این مقام دوم بودن برای مقام علمان. توضیح این مقام، خیلی از که سال ها ادراک مقاماتی میخوام توضیح بدن اصولا در زندگی ما اون چرا که ما به عنوان ادراک عقل عملی میدونیم ممکنه توش حسن باشه لیکن قالبا اینطوره، خالی از قوه نیست یعنی خالی از یک جهت مقبه هم نیست یعنی زندگی ما به خاطر محدودیت‌هایی که بشر داره قالبا حسن مطلق نیست قوه مطلق نیست چون این حسنه و قبعه مطلق نیست اون که ما درک می کنیم یا مثلا یه درجت حسن یا یه درجت قبعه احاته کامل به حقایب و و قبعه یک دو احاته کامل به تضاهم جهات و حسن و دو سه در صورت تضاهم چه باید کرد؟ بیدید شما در خود قرآن کریم دارید این حضور یه سألونی که اندر حمل ولی میشه قول چیه ما اسمانی کبیر من مناب اون اناست ببیوازه دیگه هم اسم است هم مناب اون اناست اوشد این هزا همه ملاس هست در سال قرآن در ببینیم و این در خود خم که این همه روایت داره ما باعث الله و نبیه اللہ وقت هر روان خم رزید معاذالت باز در خود این خر با این همه حضور و با اون رواض شدیدی که ما در درخنگاری که در کثرت چیزی به لحاظ بردار آصاب نداریم هر محرم یک جری از شدت و از چه دیگری نیست معاذالت خداوندان اوطان اینا اسم کبیر و مناف اول النهار لكن اسمهما اکبران نفعهما این مشکل کار در اخر اینجاست ممکن از تربی یا بقول یک کسی دکتر دکتوری نه آقا الان در شما یه ما این مثلا در زمان صابعه بوده الان انواع خرم رو جوری ما کنترل میکنیم که اسمشنی لابالگریش و مصفیش و کارهای زشن شده همون منافع برش بار باشه خوب دقت. <تصفح> اگر دنبال این بحث رو باز بکنیم اون مثل تحرین هر هم داره سوال میری. هیچ جه خودشه نمیمونه. یعنی طبیعت تضاهمی که در ملاکات هست چون ملاکات همیشه یک نواق نیستن. اصلا نیست تو زندگی ما. هر که مثلا نسبت به تصاویه قرفت زن و مرد مثلا خب درش یک مصدر از خود طرف زن میاد. یک مصدر داره یعنی که شعار گفته با طرف مردی. این تضاهم ملاکات در همه جا هست. قد میبرمونه. محرومیت زن از ارث زمین مثلا که از زمین ارث نداره خب این یک محاسنی داره یک قبایی داره از یک طرف چون زن اونکه شوار بکنه نرد نامرم واده زندگی ها بکنه اگر از زمین ارث داره از یک طرف هم به لفتش روزه خانواده از واد از زمین بکنه این تضاهم ملاکات همیشه هست اولا ما احاسه به ملاکات نداریم چرا؟ این احکام به ملاکات در زندگی بشر عادی خیلی مشکلی است. بخاطر می‌کنه. این مشکل شما من همیشه عرض می‌کنم، مطالبی رو که مطرح می‌کنم، بعضی ازش قانونیه، مطلق است، بعضی خصوص شریعت است. ما به ملاکات ممکن نیست، چون شریعت مقدس انسان را در یک مجموعه بزرگی، یه چیزی خب به از عنوان عالم زر، بعد عنوان عالم رحیم و صلب و رحیم و بعد وانوانا دنیا و بعد ورزخ و بر قیامت و و در مجموعه یه روالی تمام مسالحین این حوالین لحاظ شده دقت میکنی این که میگه فلان غذا رو بخورین نطفه شما مثلا شما دوزی نکنید چون بعد بچه ها سو خلان درمی نکنی با ممکنه کسی اصلا گیویده ایجرسالی نصدیش رو دوزی می کنی بعد که سنده سالگی بعد این تاثیر این قضای حرام در مقام نطفه، درو لازم بچه‌ام برایش نشده، ازدواج نمی‌کنه، تخلفه. این تأثیر قضای حرام بر نطفه، بعد در ایام رحم، بعد در دین ولادت، حالا مجرا بعد تو دنیا، بعد تو برزخ، اون چیزی که ما این در بشر نیست، خب مثلا این نحوه ملافات در قوانین ما نیست. قوانین بشری این نحوه ملاس رو در زندگی انسان با اون اندز عریزش در نظر نمیگیره. اونی که در نظرگر همین ملافات در دور دورانصبح بود عالم مهم مثلا بیشین در نظر نمیگیره. پس قبل از ازدواج دان نطخ رو بررسی روکن سالم باشه مرد سالم باشه زن سالم باشه یه محبولیت می داره اضافه بر این اصول شریعت از احظام دلارارت سریع داره که ما غیر از آلمشه شهود عالم غیب داریمره و نسبت آلَم شُهُود بنسازه با عالم غیب و غلوغتشون مثل یک ذره دانیل ذرات بزررت مثلا دانه ارزم در مقابل مثلا یک دریایی که فرض کنیم 10 برابر صد برابر هزار برابر مثلا بدون آرام باشه که قبل خیاس نیست دقیق میفهمید؟ اونها اون مصالح در عالم غیب یک ثرا مصالح عالم برزخ یک ثرا مصالح عالم این مصالح رو شریعت مقدسه جون ترویج کرده که تمام اینها مراعاتش خب اگر این باشه ما طبیعتا با عقل باشه اون احساسی در ملاقات نداره طبیعتش اینه ما احساسه به ملاقات دنیوی مجلس پارلمان جمع میشن رأی میدن میشه تا حد زیادی تو, تو اونجا ملاکات محدوده یعنی یه قانون جنبن تا یه سال دو سال بعد لغوش میکنه چون نمیخوره به ملاقات نمیخوره ملاکات زمانی توش دخالت میکنه نمیتونه شهر خوده پس یک مشکل ملاقات در شرایط معاصره دو مشکل تضاد منلاکاته که در خود بود تصریح نموده سه مشکل بزرگتر ما در تضاد ملاقات چه کار بکنیم چون خود تفسیرگیری در تضاد ملاقات یه مسئله بسیار مهمیه مثلا ببینید در تز... در مسئله ملاقات میگیم آقا این ملاک حسن 80 20 درصد در ملاک قبه داره قائل به کس رو انکسار بشین بگیم 20 در مقابل 80 ثابت میشه 60 تا ملاد که حسن میمونه پس این میشه حسن یا اصلا قائل به کس رو انکسار نشین بگیم اگر انجام دادی 80 درصد دادگیره میاد اگر انجام ندادی 20 هستن موجوده قطع کنیم شوخی مروح هست با سیگار نکشت تو دم عمر میکنه که خب بعدش میکنه. حالا سیگار میکشه، در یه سیگار میذاری، دندز دیگه میبری، ده دقیقه با سیگار، کیفیتش دیره، ده دقیقه بی سیگار. که با سویش کنم که بعدش یه خوب دکتر موسی کار ما تو ملاقاتی و اما یه واقعیتی تو ملاقات ما. یعنی بعد ملاقاتی انجویه. گفت با این مشکل کاره من این تبدیل که در متکلمی ما هم در عبریه حالا احکام شرعیه حالا تا احکام من غیر از حالا اونجاهادی شده چه احکامی که از در احکام مشکل اساسی ما که آیا کس و اینجسام تو ملاق قاعد یا بگیم نه هر ملاکی یک خودش محبوظه شما انجام بگی اگه بگید نکته انکسار اگه کسر انکسارش معناش اینه انجام دادی خوب انجام انجامیه بد فقط بگید اگه کسر انکسار وارد شد انجام دادی خوب کس این کسر انکسار معناش اینه دیگه این 60 درصد ملاک داره بلا یعنی انجام دادی خوب انجام نده روشن شد انجام ندادی بد اما اگه کسر انکسار وارد نشد و انجام دادی خوب انجام نده یا متوسط خوب. اما خوبیش کنه تصوری بود. انجام نذابی این اینجا گفت اسمه ما اکبران نفعه ما اگر پر کردی به خاطر اس خیلی خوب اگر ترک نکردید نستجی رو به لازال نفع داره نستجی اینطور قارب بشین یکی از اسبابی که در احکام شرعی ما باید داشته باشید و به ملاقات نکنیم اکتفا بکنید احکام شرعی رو تقییر تکلیف میکنه قصد می کنه میگه آقا خمر رفت انجام دادی کار خوب انجام نزید بر دیگه تو تا ملاف نداره خود دقت کردید اون حالت تردید رو بر میداره از احکام و شریعه التاپون تل احکام الاغلیه یکی از معانی از... من بودت که شوشنشون یکی از معانی لطفشی که اون حالت تردید که بگه اگر من سیگار کشیدم مثلا فرسون. عرض میشه 20 درصد ملاق سیگار نکشیدم 80 درصد ملاق اینم ملاق بیاره اونم بره نه این شاره نه دخالت میکنم با دخالت شارع حل قسم میشه ادراکی مجرد ادراک ملاقات حتی اگر فرض کردیم احراض ملاقات شد که نمیشه در ملاقات شرعی نمیشه و به ارقان و ارگو میشه شرعی نمیشه در قبادم و محدود احراز میشه نظر یک قانون قرار میدن بعد شیخ ما بعد تو ملاق عرفت شدید فهمیدن که درست نبون یواشاش که این قانون اقرار شد با مشکلاتی برد پرد کردن فهمیدن که یک زبایی دیگه این مزرح بوده این ملاق کافی نبید اضافه بر این جهن پس سه نقطه ما داریم یک عدم احراض ملاقات شهر این به درد شریعت نبید دو تضاهم ملاقات این مصلحه د در و ها تصمیم نهایی واضح نیست که آیا در تصمیم نهایی بگیم هر دو ملاد محفوظن یا کسان این کسان میشه این سرن که ما با تشتر با ادراکی یک ملاد نمیتونیم به نتیجه برسیم چاره ایرد جمع و قانون نداریم قانون حل در حصه رو یکنه اون حل با ارکام شرقی میشه با ارکام قانون میشه مضافه این که چون حالت ملاتیه ممکن است به لحاظ افراز فرق کنه میگه آ من برای من منافعش میشهد از اسمشه اون میگه برای من مثلا منافعش دو درصد اون میگه 5 درصد اون میگه چی دست هیچ ذابطه‌ای پیدا نمیکنه اون جنبه قانونی در وقتی که یک نوابتش میکنه حکم ساره میده حکم خاطی میده البته در بنابراین یک مطلب این مطلب دوم بود که ملاتات بود شما توضیحی بدید یک مثلا بگیم مثلا خود قانون اصلا خودها خصلت قانون این که باید سریع و روشن باشه و حد و حدودش محدود باشه کیفیت ترتب و آثار هم برش روشن باشه و یه با قانونی پیدا نمی کنه اصلا احقا معقلی به لحاظ این ادبیات این اسمش عددیت و قانونی به لحاظ عددیت و قانونی فاقد این عرضش ها هستن یعنی فقط مثلا میگه اثر خوبه خیلی خوب اثر خوبه اما این خودش قانون نمیشه چون باید کجا حساب بشه باید کجا حساب بشه مقدار خرجش باید حساب بشه تأمین بودجه چرا گفتم تامین بودجه باید حساب بشه از مردم گرفته بشه یک لوازم داره دولت خودش بخش خصوصی بده اینا تمام محاسبه داره اهل کیمیاد ادراک میکنه میگه این خوبه خوب این خوبه با این خوبه نمیشه قانون جعل بکنه باعث با تخلف خب فرض کنید یه کوچه اسفالت نکردن چیکار بکنی؟ دولت جبران بکنه خودش انجام بده از اونا بگیره خب این قوانینی که در دنیا مختلفه بعضی میگه انجام نمیده شما نخواستیم ما هم انجام نمیدیم اشاره میگن نه انجام میدیم بعد از اون مالیات میگیریم از خود اهل کوچه تدریجا میگیریم وسط سر سر سر پیشوندی میگوین اون چیزی که الان در اینجا ما در ادراکات عقلی مشکل داری ادراسات اقلیز قابلیت اجرایی نداره ادبیات خان زمانت اجرایی نداره که دیجای خودش اصلا ادبیات خانونی نداره لذا اینه که ایشون میگه که این به اصلاح باید به جمعه خانونی گرسته این حرف درستیه و این اقتصاده به شریعت مقدس نداره این به تمام قوانی جاری میشه اصولا در تمام قوانی اینجوریه تا یک چه حد حدود محدود قانونی حتی باید نسبت به جزا که اگه کسی انجام داد چه پارش بکنن؟ بله خالب برای اصفاد کسی دروشه کسی قبول نکن این باید, باید تمام اینا رو در نظر بگیره به مجرد ادراکی اینکه که اصفاد هستند این کافی نیست برای ماده قانون بودن و الزاب قانونی یا الزاب یا غیر الزام قانونی آوردن این راجع به کلیه این بحث یه بحث دیگه یه البته در اینجا هست و اون اینکه این اون باز اختص به شریعت داریم آم بود و اون اینکه که اصولا ما دقیقا نمیتونیم بفهمیم حقیقت موارد استهبابی که شارع میگه چیه معلوم نیست موارد استهبابی فقط به خاطر برد از ملاکات جونیوی باشه یعنی اصلا اون نکته اساسی یعنی ما هنوز نسونستیم مگه از یک روایت دیگه خاصی بیانم ما نتوانستیم این نفتر رو بکنیم که معیاری مثلا و کدا این اوهب کلا که کدا امنالله یوهب و تبابی و یوهب این تبابی و و حب اعلانی آیا این چیه این حقیقت و ما اصحار درستیم یه خداون اصحار کنندهار داره مثلا که چیزی رو این یه مشکلی داره که ما احاطه به حقیقت جمع در شریعت مقدسه نداریم لذا با منجرد ادراک جهات ملاقات به جایی نمید من اون طور کلی بحث و از این ایزاوی دیگه جمع جور بکنم که کل این وجوهی که گفته شده اصولاً ده خط بفرماییم این وجوهی که گفته شده نه فرسین فرسین آگه این راجبه این برسی هم یه نقطه گرد بکنم تا ما شکن راجب این ادراک عقلی و اینکه ما حسن اشیاء رو بفهمیم و از اونها شریعت گاهی اوقات در بعضی از کلمات اینطور آمده که اصولا معنای خاتمیت هم همینه یعنی پیغمبر اکرم هر چی فرمودن قانون رو هم ما با عقل درک میکنیم اصلا معنای خاتمیت اینجوری به ذهن رو آمده که ای بشر خودت منتظر راهی الهی نباش راه تمام شد تو زندگی رو باد با عقل خودت اداره شما این کار رو انجام بده و هرچی که عقل گفت این زندگی این همونیستی خداوند و متعال خواسته این یک تصابقی از کدر در بعضی از عبارات آمده حالا من نمیفهمم چطور شده این معنا آمده چون از این زمانه ما این عبارات آمده اما قدیمترین اصطلاحی رو که ما تعبیر رو که بنده دیدم اما اگر جای دیگه دیدم با جای خودش در این جهر قدیم کنیم مصدری که در مر... کلمات مرحوم صدر متعلقی نمولا صدرا در شرح و اصول کافی داره در شرح و اصول کافی به نظر هم دارم که من چاپ قدیمه به جلدی قصد به نظر 111-123 به که هم ذهن ما من چیز تازه مراجعه نه همه حدود است. ایشون میگه و معنای قاتمیت این هست که دیگه انسان منتظر رهی الاهی نباشه اون این تأبیر که انا انسکرم دیمیگه میگه اون که لازمه ای این از که انسان از راه رهی به, به کمال برسه ترسط پیغمبر اکرم بیان شد چون میدونین انسان در میان حیوانات از همه حیوانات نه از حیوانات نیتونه انسان تقریبا بیش از بقیه شد بعد از تقلدش مقدار زمان زیادی احتیاج داره که کسی یورو رو کنترول بکنه مثلا این جوجت ها دنیا نگرام منتظر چیزی نمیشه انسان یه خسلتی دیاره تا مزداد میشور نداره برکی افتاده این حالا توی حیوانات تقریبا ایسا دورانی که تا بخواد خودش مستدر بشه از همه سولانی تر انسانه انسان خسلت بیگون جوریه اون دورانی که بخواد یعنی از اولش که تقریبا 100 درصد وابستگی وابستگی کم میشه از مادر کم میشه بلکه وابستگی اطرافه انسان هم لو وابسته است تا یک درجه بهش لو جای خودش می دیگه وابستگی پدر مادر برادر خواهر اطا بیا عمو جامعه مثلا خودش حتی دیگه خودش فکر میکنه این طبیعت انسان استن طبیعت انسان است این کبیات اگه ما به تاریخ یعنی تاریخ رو هم مثل یک انسان زنده ببینیم در تاریخ هم همین جوره. یعنی انسان در نیمی در ذهنه وجود داره یه وجودی بود که همیشه نازست بود حالا جهات مختلف نفس که این نفس با دوستی وحب برطرف میشد. خاتمیت برای عبادت اون سرز همه اینجوریه خاتمیت همه اونشه که انسان توقع داشت از وحب بیاد از شریعت و سما بیاد اونا دیگه تمام شد انسان یک مرحله رسید که گروه های خودش اونجوری که ذهنی الهیات انجام بده به سعادت برسه مثل اون بچه که با پدرم آموزش باشه این رفیق اون مرحله رشد تاریخ و رو اینجوری تفسیر بکنه انبیا سابقه مثل مراحل رشدیه که بچه میره تو جای خودش میگه روپا فوق روپا. در مرحله تاریخی اون مرحله ای که انسان به مرحله ای که توpair خودش رسیده به نیازی به یعنی باعث اون چی که در پای خودشی هست نه اینکه مشتاقی از رنگ چه. تو انسان که اون پای خودشی است اون چی که در اورال یاد گرفتن انجام ده بعد تغییر ثرم انسان در یک مرحله برسه که دیگه نیاز بید. به یک به ما انزما از خارج نباشه منتظره اون چی که ممکن است رنگ و عالم غیب بیاد در روی کره زمین و دست انسان رو بگیره و روش بده توسط رسول الله آمد ما شیعی رو که بکنه در دل جننه و وعده که انار لاوه قدام نفت کرده دیگه یه همیشه تعبیر رو ملاصت این تعبیر خیلی زننده نیست اون تعبیر اول خیلی زننده است احتمال میدم این آقا دلیلش اینه آقا فارسی زبان فکر بهش میگم رو خونده حالا بیا کسی خونده عبارات ملاصت رو گفته این بعد فهمیده عبارات ملا صد اوج میگه منم بیا نایرم بعد ازش چون نایرم اول اینکه خاتمیت رو به نظرم تو بحثی کتاب عقل یا علم وجل یا عقل، علم ما را صحبت در شرح کافی ایشون این جور معنا می یعنی اون چی که بشر انتظار داشت برای کمال خودش و رشد خودش از غیب بیاد از وحی بیاد این توسط پیغمبر آمد بقیه شو که بستر باید اون نوصله دیگه راه بیفته خودش دیگه منتظر غیب نشه منتظر بشه انسانی دیگه از غیب برای اون چیزی بیاره این حالا انتظار ناشته باشید. اونجا که لازم بوده از خیلی مسسیله. حالا این صحبت خودش سییتته خیلی قبی نیست این هم جوی با برهن که احساسات قبیی دارم. من خیلی مثلا رو خلاصه بکنم این یک کلمه رو که ما تماموم شدید دقت بکنید این وجود که گفته شد حالا این چند روزه رو شما معثر کردیم. این کللا یه ت کلی که عاشا ابیان بود ترقیان قبلا نبوزه. خلاصه اون تفکر اینه که بین کاری به قوانین و اجراعات اجتماعی نداره اجراعات اجتماعی تابع به عقل انسان سابه بینش انسان تابع به شورا سابه نظر سنجیه دین فقط در اون جهات اخلاقی رو تقریبیت میکنی فقط وقت اگر کسی اینطور قایب شد این مواجه عقل و استحصان و مساله این جهره رو میکنه شورا و این عقل یک کسی این طور اگر باید. یا دین رو اصولا یک نوع به اصلا مجموعه اضرافات ماورای غیبی و ماورای طبیعی ایمان به خدا ها که این دین راجع به زندگی خارجی هیچ نقشی نداره یعنی در حقیقت دین کسانی این مجور رو مطرح کردن این تصور رو باید بیارن و این تصورم عرض کردم الان مدت هاست سوال هسته در قرد تکدار شد که میخوان توجیر تازو کن دین رو به این توجیرشون اینه اونه که قبول دارست با خدا رو به اونه هیچی اونه هسته که میخوان قبول بکنن اینه و انسان با داشتن آیات و روایات و تحکیل برا احکام ادایی در تمام زنیه های زندهی محسوساً بلاحاد خاتمیت مثلاً محسوس خاتمیت اینه که اون چی که بشر احتیاج داره که درباره ترد اجتماع از ذهن بگیره ترسته پیغم براموزه هیچ نقصانیه حتی جاتی سیاسی حتی جاتی اجرایی هیچ نقصانی در وجود ندارد این تفکراتی گفته شد توان اینها بی اساس استحسان و مستحسان اینها انصافا هیچ کدومشون اساس درستی پیدا نیم و واقعا باید باید باید باید نمی کنم ترسوانه در درجه انصافا در درجه ا از نظر دیدگاه دوم فقاهه اخیر و درزی و فقاهه سنت هم تصاحل اون که نیاز داشته باشه این انصافا در تبین احکام شریعت و استخراج فروع از اصول و این که شریعت رو زنده نگه بدارم با تمام مشکلات و با تمام موضوعات و با تمام حالات و شرایط اجتماعی به حیصتی که مسلمان شریعت قابل انطباق بشه در تمام زمانها تا روز قیامت و در تمام مکان‌ها این خیلی مهمه تو مناسر سرکی، گرم سیر که هم از دون دارن که و برای تمام انسان ها انسان هایی که نخبر هستن با قول میگوزیم ما دکتر ها هستن پروپوسور از اندیشه ای بارا دارن تا انسان های عادی تا پیرزن تا بچه انصافا این که بیاد فیر رو بتونه در تمام اینها قابلیت بده انصافش رو از شریعت خارج نشه و اصلا عهده بهشون قالب پیاس این چیزی است که این روزه که تمام ایجاد شده که من عرض کردم میشه با کتاب و سنت دبیری این شاحده بسیار و واقعا الفضل و فضل که اون دو راه اهل بیت بعدا به فقهای اهل بیت بعد هم به فقهای اهل سنت مخاصم نه که دنبال قیاس و ایرادشون هستن انصافا خیلی زحمت کشیده شده خود اهل سنت دلیل زیادشون فضل رو به محدثین دعوای معروفه که اون محدثیان بابا انسافا مهندسینان خیلی نقش داشتن خیلی زحمت کشیدن این احادیث تا تدوین شده زرق شده خیلی خونه دل خوردشه تا, تا به مرحله تو آسان نیست که شما صرف وصال این احادیث می ترید خیال به همین آسانی احادیث شما رسیده انصافا خونه دل تراوانی در طول تاریخ این دو طایفه در بین علمای اسلام یکی محدثین یکی مفسرها انسافا نقش بزرگی در حفظ شریعت و انتباه کامل شریعت در تمام زمانها، مکانها فرهنگها، افراد و خصوصی یاد داشتن و نیاز هیچ کده از این وجودی گفته شد البته حسن حقیقه رو نیمشه این کار کن این که انسان در زندگی خودش کار حسن انجام بده باشورا کار حسن انجام بده اراده مردم رو در نظر بگیره این کار رسیار زیبایی سی اصلا ضروری هم هست. اما اسناد او به بشر به خاط این خالی از اشکار این به همین اطلاقاتی مثلا زندگی دنیا من لامه آشله لامه آدله یه اطلاقات اینجوری اما داخل راجب اصول شریعت یا راجب احکام کلی اینها رو پیش بکشیم انصافا درست نیست و فقط مرد نیست برای که بگیم شریعت در اینجور احکامی ندارد. اون روایات ایشون متعرض جهر اون روایات عقل جهر مفادش نیست اصلا کسی روایات عقل جهر اینجور که شارع احکام قرار نشه برعمتون احکام العرزه این که جمع پس شارع جرم ننداره میگه من تو که بشه طبق شورا بشه جمع نداره خب اگر داره که قانون فدین من آزادم این رو انجام بدم نه این که تو جرم دین نمیشه میگه آقا شراب الله کار دیگه خب آزادم شراب میخورم قانون بکنه این اصلا با قانون بودن کسی که فانم داره نیم سال گذاره کار کردیم، ویم منام. از آن بعد چیز زیادی کشید. این کار نداره چنین شد، پنج شد، یا پس سناوایی، این مطلب که مثلا یه آلتون گذار کردیم، از لحیه آبل هم مراوشش اینه که حالا جمعش میخواد یه شاه مقدس، همون چی رو که قرار داده، در اساسی یه اصول علانی که خود اونها نفس ثابت هم همون حدسی واقعیتیه. نه اینکه مراد این است که من قانون تباه شما عباده برو به درک میکرد فعلا او بعد برده هست خب که قانون اون رو قانون به جو میکنه به قطعه مراد از روایات عقل و جمع مراد اینه اون نحض و دلاغه که میفرمو ازا برسر را بکرسه همونده لیوشی رو خداوند انبیا رو فرستاد لیوشی رو, یعنی و رو انجام الاغول یعنی اون صورت کامل دقاق نوعوی و حقاید عقلانی در شریعت و خاتمه و در این شریعت مفتسته اون که این انسانی بوده بیان شده رضا حق این است که این وجودی رو که با عنوان عقل گفته شده یه نزایش رخصه اصولی که از سر منابزه و خودش محبوضه یه یعنی مقدارش هم مثل استحسان اینها اینا اساس شبیه نداره و برای فقه ویلایی اینها خیلی بری فره استن با و محمد و